فوکس ان ارتباط بین هیبنوتیزم علم هیبنوتیزم هیبنوتیزم کردن خود هیبنوتیزم کردن دیگران و تمرکز پهنای تمرکز شما فکس. این موضوع خیلی مهمیه که باید حتما بهش بپردازیم چون که اصولا تمرکز و فوکس یکی از بنیانهاییه که هیپنوتیزم از اون استفاده میکنه پهنای تمرکز انسان پهنای توجه انسان اتنشن یه جورایی محدود هست و حتما دقت کردید که ممکنه شما جوری مجزوب یه برنامه تلویزیونی یا یه فیلم سینمایی شده شدید توی زمانهایی حالا هر موقع توی سینما ممکنه بوده باشه که حتی صدای اطرافیان رو نمیشنوید و کسی اگه شما رو صدا میکنه و یه حرفی شما میگه شما میگی چی متوجه نشدم. الاتین هست که کل پنهای تمرکز شما کاملا پر شده با اون فیلم یا اون فعالیت که حالا مشغولش بودید و نکته دقیقا همینه شما اگه میخواید توی هیبنوتیزم مهارت زیادی رو کسب کنید باید بدونید که یکی از پایه های این علم برمیگرده به قدرت کنترل توجه و تمرکز چیزی که زیاد روش تمرکز میکنید زیاد روش توجهتون رو میذارید دقیقا همون چیزیه که شما رو وارد ثونل واقعیت خودش میکنه در واقع شما با توجه کردن و تمرکز کردن به چیزهای مختلف در هر لحظه زندگیتون دارید دقیقا خودتون رو هیپنوتیزم میکنید که کس که توی بدبختی هست و دائم توجهش رو میذاره روی بدبختی هایی که همین الان داره و توی زندگی فیزیکی و مادیش وجود داره داره اونها رو بیشتر میکنه واس میخوام در واقع داره اون پد رو بیشتر میکنه، اون شرش رو بر خودش فخیمتر میکنه، چون که در واقع داره وارد تونل واقعیتی میشه که پر از چیزهای منفیه، چون داره به چیزهای منفی توجه میکنه. بنابراین یکی از چیزهایی که خیلی خوب باید بهش توجه کنید، اینه که تمرکز خودتون یا تمرکز و توجه طرف مقابل رو یه فرد دیگر رو دارید روی چه چیزهایی میبرید؟ رفتارهاتون جوریه که به فرض تمرکز و اطرافیان اطرافیانی خودتون روی هایی داره میره و بنابراین یک بخش مهم از علم هیبنوتیزم توی هر نوعی از اون که نگاه میکنیم دقیقا اینه که شما چطور دارید این تمرکز و توجه خود یا دیگران رو می کنید خیلی اوقات برای این که بتونید خودتون رو, رو روی موفقیت روی سروت روی سلامت دارو هیپنوتیزم کنید کافیه چیزهایی که توی ذهنتون دارید توجهتون رو میبخشید بهشون خیلی دست و دل بازانه شما دائما حواستون پرته شما دائما دارید به چیزهای مختلف توجه میکنید و حواستون پرته تمرکز کافی رو روی اون تونل واقعیت و روی اون چیزهایی که میخاید ندارید یا اگه دارید همین تمرکز بعد کافی فوکاست و متمرکز نیست و بنابراین اگه شما بی توجه و تمرکزتون رو بهتر و با دقت بیشتری روی اون چیزهایی که فقط میخواهید بذارید، خواهید دید که تونل واقعیتی که تو هیپنوتیزم شدید هم عوض میشه و همین نکته در مورد دیگران هم صادقه. این در واقع شما میتونید دقت کنید که توجه و تمرکز دیگران رو دارید روی چه چیزهایی میبرید. توی ارتباط ساده، توی جلسه کاری، توی رابطه عاشقانه و اون چیزی که تمرکز یه گروه، یه نفر، خودتون، دیگران، هرکی روش داره متمرکز میشه دقیقا تونل واقعیتیه که نهایتا رقم میخوره و همه روی اون هیپنوتیزم میشید